کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان پادشاه جادوگر روزی روزگاری پادشاهی در سرزمینی زندگی می کرد که علاوه بر اینکه پادشاه یک سرزمین بزرگ بود قدرتهای جادویی زیادی هم داشت او در دوران جوانی با شاهزاده خانوم بسیار زیبایی آشنا شد و از او تقاضای ازدواج کرد با این ازدواج او احساس می کرد خوشبخت ترین مرد روی زمینه بعد از یه سال پسری به دنیا اومد که همه ویژگی های خوب والدینش رو داشت و مورد علاقه همه درباریان بود به محض اینکه ملکه احساس کرد پسر اونقدر بزرگ شده که می سفر کنه به همراه پسرش مخفیانه به دیدار مادرخوندش که پری بود رفت. اما چرا مخفیونه؟ چون پری به او هشدار داده بود که از زمانهای قدیم پریها و جادوگرها با هم دشمن بودند و پادشاه از این دیدار موافقت هیچ وقت نمی کرد. مادر خونده ملک علاقه زیادی به او داشت و از شاهزاده کوچک هم خیلی خوشش اومد. او قدرتی به بچه داد که بتونه از همون دوران کودکی همه را جذب خودش بکنه و در زم بتونه هر چیزی را که برای یک شاهزاده لازمه به راحتی یاد بگیره به همین دلیل همه معلم‌های او با خوشحالی متوجه شدند شاهزاده به سرعت در درسهاش پیشرفت میکنه. اما هنوز مدت زیادی از عمر او نگذشته بود که مادرش رو از دست داد ملکه در آخرین لحظات به او سفارش کرد که هیچ کار مهمی را بدون مشورت باپری یعنی مادر بزرگش انجام نده. شاهزاده به خاطر از دست دادن مادرش خیلی ناراحت بود. اما قصه او قابل مقایسه با پدرش نبود که نمیتونست دوری همسر عزیزش تحمل کنه. حتی گذشت زمان هم از غم او کم نکرد و دیدن هر چهره آشنایی او را به یاد عزیز از دست رفتش منداخت. بنابراین پادشاه تصمیم گرفت به سفر بره و با قدرت جادویش میتونست به هر شهری با یک شکل جدید وارد بشه. او مدتی از سرزمین های مختلف دیدن کرده و چون چیزی توجهش رو جلب نکرد تصمیم گرفت این بار به شکل اقاب در بیاد و پرواز کنن از بالای کشورها گذشت تا بالاخره به سرزمین زیبایی رسید که هوایش پر از بوهای گلهایی بود که سراسر زمین را پوشونده بود. او از این بو خوشش اومد، ارتفاعش را کم کرد و باغ بزرگی را زیر پاش دید که پر از گلهای کمیاب بودند. فوارهاش آب زلالی رو به هوا می پاشید از میون باغها ها میگذشت و روی اون قایقهای زیبایی دیده میشد که مردم با لباسهای زیبا و گران قیمت و جواهرات درخشان سوار قایقها روی آب گردش میکردند. داخل یکی از این قایقها ملکه اون کشور با تنها دخترش که از قرص ما هم زیباتر بود، نشسته بود و ندیمه ای از او مراقبت میکرد. هیچ انسانی جذاب تر و دلنشین تر از اون شاهزاده خانم وجود نداشت و به خاطر چشمهای تیزبین اقاب پادشاه میتونست از آسمون اونو تماشا کنه. اقاب روی شاخی بلند یک درخت پرتقال نشست تا بتونه براحتی شاهزاده خانم رو تماشا کنه یک اقاب در حالی که قلب یک پادشاه در سینهاش میتپید خیلی کارها از دستش بر اومد او فوری تصمیم گرفت اون دختر دلربا رو با خودش ببره چون مطمئن بود پس از این دیدار دیگه نمیتونه بدون اون زندگی کنه او منتظر موند تا پای دختر به ساحل رسید و ناگهان قبل از اون که ندیمه محافظ بتونه دستش رو برای گرفتن دختر دراز کنه، اونا با خودش به هوا برد. شاهزاده خانم که در پنجه های اقاب گرفتار شده بود، گریه های سوزناکی سرداد. اما پرنده با اینکه از ناراحتی او آزرده شده بود، اصلا قصد نداشت شکار زیباش رو رها کنه و با سرعت به پرواز ادامه داد تا شاید، سکوت او دختر رو آروم تر کنه. بالاخره وقتی مطمئن شد که به اندازه کافی دور شدند، آروم آروم پایین اومد و به زمین نزدیک شد و شکارش رو روی دشتی پرگل گل رها کرد. بعد به خاطر خشونتش از دختر عذرخواهی خواهی کرد و گفت که میخواد اونو به سرزمین بزرگی ببره که خودش پادشاه اونجاست و اون میتونه در تصمیم گیری کمکش کنه و پیشنهادهای خوبی بده تا چند لحظه شاهزاده خانم هیچ حرفی نزد اما کمی بعد ناگهان شروع کرد به اشک ریختن پادشاه گفت شاهزاده خانم زیبا اشکاتو پاک کن قسم میخورم که تنها آرزوی من خوشبخت کردن توست شاهزاده خانم جواب داد اگر راست میگویی منو آزاد کن تا به خونم برگردم وگرنه نه تا ابد به چشم بزرگترین دشمنم به تو نگاه خواهم کرد. پادشاه گفت قبول کردن این پیشنهاد باعث ناراحتیش میشه و دلش میخواد اونو به جایی ببره که همه بهش احترام بذارن و همه خوشی ها براش فراهم باشه. اوقاب، بعد از گفتن این حرف دوباره دختر را با پنجه هاش گرفت و با وجود گریاهای او با سرعت پرواز کرد و خودش رو به نزدیکی سرزمینش رسوند. بعد آروم دختر را رو روی چمنها گذاشت. در این لحظه دختر متوجه قصری باش کوهی جلوی روش شد که ظاهری زیبا داشت و داخلش اتاقهایی ساخته شده بود که پر از وسایل قیمتی و زیبا. شاهزاده خانم که فکر میکرد اونجا تنهاست با خوشحالی متوجه شد تعداد زیادی دخترهای جوان دورش کردند و مشتاق خدمتگذاری او هستند. یک توتی رنگارنگ هم بود که قشنگترین کلمات دنیا را به زبون می آورد. با رسیدن به قصر پادشاه به شکل اصلی خود در اومد با اینکه دیگر زیاد جوان نبود اما همه به جز خانوم اونو دوست داشتند و این نفرت به خاطر خشونت اولیه اقاب بود و دختر هم هیچ زحمتی برای پنهان کردن احساسش به خود نمیداد. اما پادشاه فکر می کرد گذر زمان قلب دختر رو نر می کنه و باعث میشه به وجود او عادت کنه. او برای احتیاط قصر را با ابرهای تیره پوشند و بعد با اجلهی به دربار خود برگشت شد چون به خاطر غیبت طولانیش همه نگرانش شده بودند شاهزاده و همه درباریان از دیدار دوباره پادشاه پادشاه محبوبشون خیلی خوشحال شدند اما کم کم به قیبتهای گاه و بیگاه او عادت کردند چون او بهانه میآورد که باید برای مطالعه به جای خلوتی بره ولی واقعیت این بود که وقتش را با شاهزاده خانم می‌گذروند اگرچه احساسات دختر هیچ تغییری نکرده بود، پادشاه که دلیل آن همه سرسختی را نمیفهمید ناگهان ترسید که مبادا با وجود همه احتیاطها دختر چیزی درباره جذابیت های شاهزاده یعنی پسرش شنیده باشه. شاهزاده که به خاطر مهربانی، جوانی و زیباییش همه درباریان او را میپرسیدند. این فکر، خواب و آرامش را از پادشاه گرفت و بالاخره باعث شد او برای پایان دادن به ترس و نگرانیش پسرش را همراه با خدمتکاران زیادی به سفر بفرسته. شاهزاده بعد از دیدار از کشورهای مختلف به سرزمینی رسید که هنوز یاد شاهزاده خانوم شاهزاده خانوم گم شده در آن فراموش نشده بود. پادشاه و ملکه با مهربانی از او استقبال کردن و به احترام او جشن‌های زیادی ترتیب دادند یک روز که شاهزاده به دیدار ملکه رفته بود در اتاق او چهره نقاشی شده بسیار زیبایی را دید او درباره آن تصویر سوال کرد و ملکه در حالی که اشک میریخت گفت که این تنها چیزی است که از دختر عزیزش به یادگار مونده، دختری که یه روز ناگهان رو بوده شد و هیچ نفهمید او را چطور و به کجا بردند. شاهزاده واقعا متأثر شد و قول داد همه دنیا رو بگرده تا شاهزاده خانم رو به آغوش مادرش باز نگردونه دست از تلاش برنداره. ملکه گفت که تا ابد مدیون او خواهد بود و قول داد اگر شاهزاده در این کار موفق شود دخترش رو به همسری او در بیاره و هر چیزی که مال دخترشه به او تعلق بگیره شاهزاده که از فکر ازدواج با دختر بیشتر از به دست آوردن اموالش خوشحال شده بود با ملکه و پادشاه خداحافظی کرد و قبل از رفتن خواهش کرد نقاشی چهره دختر را به او بدن اولین کار شاهزاده این بود که سراغ پری رفت و خواهش کرد از همه نیروهاش کمک بگیره و در این ماموریت مهم اونو یاری کنه پری بعد از شنیدن همه ماجرا فرصت خواست تا سراغ کتابهاش بره. پس از مدتی مطالعه او به شازاده گفت کسی که دنبالش میگرده جای زیاد دوری نیست اما وارد شدن به قصر تلسم شده ای که او در اون زندونیه کار مشکلیه چون پادشاه یعنی پدر او قصر را با عبر تیرهی پوشونده و تنها رای حل گیر آوردن توتی شاهزاده خانم هست. البته پری گفت که این کار غیر ممکن نیست چون پرنده بیشتر وقتا در اون اطراف پرواز میکنه. پری اینو گفت و به امید دیدن توتی بیرون رفت و خیلی زود در حالی که پرنده رو در دست داشت برگشت. او فوری توتی رو در قفس انداخ و بعد با کمک اسای جادویش شاهزاده را به شکل اون توی درآورد. پس از اون، پری به پسر توضیح داد که چطور باید خودشو به شاهزاده خانم برسونه. شاهزاده صحیح و سالم رسید اما در لحظه اول با دیدن زیبایی شاهزاده خانم حیرت کرد. چون خیلی بیشتر از انتظار او بود و از شدت تعجب چند لحظه زبونش بند اومد. شاهزاده خانم وحشت کرد چون فکر کرد توتیش که تنها هم صحبت او بود مریض شده او در آغوش گرفت و اونو نوازش کرد این کار باعث شد شاهزاده اعتماد به نفسش نفسشو به دست بیاره و بتونه نقشش رو خوب بازی کنه او خیلی زود شروع به حرف زدن کرد و هزاران کلمه زیبا برای شاهزاده خانم به زبون آورد همان موقع پادشاه ظاهر شد و طوطی با خوشحالی متوجه شد دختر از مرد متنفره به محض اینکه پادشاه اونجا رو ترک کرد دختر به اتاق خوابش رفت توتی اونو تعقیب کرد و شنید که دختر زیر لب از پادشاه گله میکنه و از اصرار او برای ازدواج خسته شده توتی برای آروم کردن او حرفهای جالبی زد طوری که دختر کم کم به شک افتاد که آیا این همون توتی خودشه یا نه وقتی توتی فهمید توجه دختر را جلب کرده گفت خانم میخواهم رازی را براتون فاش کنم ولی خواهش میکنم از شنیدن اون نترسید من از طرف ملکه مادرتون به اینجا اومدم تا شما رو به خونه برگردونم اگه حرفم و باور نمیکنی به این عکس که خودش به من داده نگاه کنید سپس او تصویر کوچیکی را که زیر بالش خود بود بیرون آورد شاهزاده خانم واقعا تعجب کرد اما چیزهای زیادی که دید و شنید نور امیدی را در دلش زنده کرد چون مادرش نقاشی چهره او را همیشه پیش خود نگه می داشت. توتی که دید شهزاد خانوم حرفاشو باور کرد که او کیست و مادر او چه قولهایی داده و اینکه پری پیشگویی کرده که او حتما نزد مادرش باز خواهد گشت. خوشحال بود. شاهزاده خانم با دقت به حرفهای او گوش داد و سرانجام انجام توتی از او اجازه خواست تا به شکل اصلیش برگرده. دختر چیزی نگفت و توتی یک پر از بالش را کند و ناگهان دختر شاهزاده خوش سیمایی را در مقابل خود دید. او به قدری خوب و مهربون بود که دختر آرزو کرد ای کاش چنین کسی او را دزدیده بود. در طول این مدت پری یک کالسکه ساخت. و در آن دو اقاب پرقدرت را به آن بست بعد قفس توتی را در اون گذاشت و به پرنده سفارش کرد کالسکه را به پشت پنجره اتاق خواب شاهزاده خانم برونه چند دقیقه بعد کالسکه پشت پنجره بود و شهزاد خانم در اون نشستن دختر از دیدن دوباره توتیش خیلی خوشحال شد وقتی اونها در آسمون به پرواز در اومدن شاهزاده خانم متوجه علامتی روی پشت یکی از عقابها شد و خیلی ترسید اما شاهزاده براش توضیح داد که اینها متعلق به پری مهربونیه که به او خیلی مدیون هستن و با کمک اوست که شاهزاده خانم میتونه به خونه و پیش پدر و مادرش برگرده همان روز صبح پادشاه صده از خواب پرید چون خواب دیده بود شاهزاده خانوم رو از او گرفتند. به همین دلیل به شکل عقاب در اومد و به قصر پرواز کرد. اما وقتی نتونست دختر رو پیدا کنه عصبانی شد و با عجله به سراغ کتابهاش رفت. فهمید پسرش اون گنجینه پر ارزش را از او گرفته. او فوری به شکل هیولا در اومد و در حالی که از شدت خشم میلرزید تصمیم گرفت اگه تونست او پیدا کنه هم پسرش رو بکشه هم شاهزاده خانم رو او با سرعت به راه افتاد اما خیلی از اونها عقبتر بود و فاصلش وقتی بیشتر شد که پری طوفانی درست کرد تا اجازه نده هیچ کس زوج جوان رو تعقیب کنه وقتی ملکه دختر گم رو همراه شاهزاده مهربون دید خیلی خوشحال شد همون موقع پری هم به جمع اونها پیوست و به ملکه هشدار داد که پادشاه جادوگر خشمگین به زودی به اونجا خواهد رسید و هیچ کس نمیتونه با جادو و خشم او مبارزه کنه و جان شاهزاده و شاهزاده خانم در خطره مگر اینکه فوری با هم ازدواج کنند ملکه به سرعت به سراغ شوهرش رفت تا اونو از جریان آگاه کنه و خیلی زود جشن عروسی همانجا برگزار شد وقتی مهمانی تمام شد پادشاه جادوگر به اونجا رسید او فهمید، دیر کرده و به قدری آشفته شد که به شکل اصلی خودش در آمد و میخواست مایه ی سیاهی را روی عروس داماد بریزه و اونها را بکشه. اما پری اصاشو به طرف او گرفت و مایه روی خود جادوگر ریخت و بیهوش روی زمین افتاد. پدر شاهزاده خانوم که از رفتار آن مرد بدجنس به خشم اومده بود دستور داد اونو به زندان و به زنجیر بکشان. اگر جادوگرها به زندان بیفتند، همه قدرتشون رو از دست میدن. و پادشاه وقتی متوجه شد به دست کسانی که از دستشان عصبانی بوده، اسیر شده، گیج و مایوس شد. شاهزاده خواهش کرد پدرش رو آزاد کنن و کمی بعد درهای زندان گشوده شد و به محض اینکه جادوگر آزاد شد، به شکل پرنده عجیبی درومد. و همانطور که پرواز کنان دور میشد، فریاد پریاد میزد پسرش رو و اون پری رو که به خاطر ظلمی در حقش کردن نخواهد بخشید. همه از پری خواهش کردن در اون کشور بمونه. او هم قبول کرد. او برای خود قصری جادویی ساخت و همه کتاب ها و اسرار غیبی رو به اونجا برد و از اون به بعد از تماشای خوشبختی، خانواده سلطنتی لذت می کانال تلگرامی هزار افثان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی tme نقطه می سلش مهران دوستی m r a n d o u s t i نشانی وبلاگ بلاگ ما M-E-H-R-A-N-D-O-U-S-T-I نقطه b